دوستان امشب درباره سکولاریته و راستی گفتگویی کوتاه خواهیم داشت البته همه می‌بینیم که با وعظ و اندرز و نصیحت و ارشاد درباره راستی کسی از دروغ دست نمی‌کشد به بیجه آنانی که خودشون و ازو اندردگو مرشد راستی هستن درست کسانی هستند که به قول حافظ همیشه در حال تضویر و ریاه هستن این میخواهیم به گوهر و بنیاد این مسئله پی ببریم گوهر این مسئله این است که ما برای رسیدن به چنین راستی در اجتماع بایستی سکولار بشم و گفتار ما امشب به طور مختصر در این باره است و من سعی میکنم که تا اونجایی که توانایی دارم این نکته رو روشن کنم ولی از دوستان خواهشمندم که با دقت این گفتار رو دنبال بکنم چون که فوقالاده مطلب زریفیست سکولاریته در اصل به زمان گذرا و زمان فانی گفته می شود. یعنی یک حرف منفی بوده است سکولاریته در واقع با خوشی و کامی که با زمان گذرا و فانی کار دارد بحث این بوده است که چنین خوشیها و کامها و شادیها ارزش حقیقی ندارد ما اگر اشعار خیام را رباعیات خیام را بخوانیم یا بسیار از شعرهای دیگر ما میبینیم که همیشه با این مسئله با آه و ناله درباره زمان گذرا و خوشیر که هنوز نکرده از دست میرود و بی ارزش بودن در واقع زندگی این مفهوم با, با سراسر گستره زندگی ما کار دارد حالا جنبش سکولارته سپس همین اصطلاح را همین نام را که در واقع خارشماری خوشی در زمان فانیس گرفته و درست وارونه آن را ادعا کرده از این نام ها زیاد در تاریخ به وجود آمده هست. گفته است که خوشی و سعادت در زمان گذرا و در گیتی در درست ارزش اصلی زندگی این، این مفهوم باید در ازخان در روانها در زمینها جا بیفتد تا ما حکومت سکولار داشته باشیم این نیست که بگوییم در قانون اساسی بگنجانند که حکومت باید سکولار باشد با این حکومت سکولار نخواهیم باشیم هلا خوشی و سعادت در زمان گذرا و در گیتی درست سکولارته میگوید که این ارزش اصلی زندگی و حکومت باید به این مسئله بپردازد نه به مسئله آخرت و رسیدن سعادت ما در پراسوی زمان چون در پیمودن سکولاره چه میگوید میگوید در پیمودن و حرکت زمان گوهر انسان پدیدار می شود فرهنگ ایران می گوید چون در پیمودن و حرکت زمان گوهر انسان و گوهر خدا و جان و کیهان می روید و فاش و آشکار می شود آفریننده انسان و کیهان ایرانی فرهنگ ایران عقیداش هر چیزی بون دارد انسان و کیهان و جان بون دارد از این بون است که باید همه چیز رو فهم زمان هم بون داشت این بون است که باید بروید بون آفریننده انسان و کیهان در هر زمانی شکلی تازه به خود میگیرد و این نوزایی روز بروز این نوزایی روز بروز بون انسان و بون کیهان جشن و شادی می آفریند. شما هر نوزایی را جشن میگیرید هر چیزو تازه زایی. این حرکت پیدایشی از بون و درون انسان یا هر جانی را به بیرون این آشکار و فاش شدن بون و گوهر در زمان را راستی می نامید به این می گفتن راستی وقتی که بغون شما بروی هست. وقتی بون من بروید در اجتماع گوهر ما بتوانند برویند و شکوفه شد اون این راستی راستی این نبود که یکی چند حرف راست بزنند راستی به همین قدعفشاندن گوهر و بون انسان یا خدا یا هر جانی دیگر گفته می شود. این پدیده را امروز آزادی می‌خوانند. خب ما باید فرهنگ خودمان را دقیقاً بشناسیم. این وقتی کلمه باجر، کلمه راستی را امروز به کار می‌بریم می‌پنداریم که این فقط یک مفهوم اخلاقی است در صورتی که این مفهوم اخلاقی نیست بلکه وجودی و گوهریست است. با کل وجود کار دارد نه تنها با انسان آزادی دو چهره گوناگون دارد چهره نخستینش در اجتماع موقعی نمودار می شود که مردمان بر ضد دستگاه های قدرت سیاسی و دینی و اقتصادی برمیخیزند وقتی ما بر ضد دستگاه های قدرت از هر نوعش اشبر برخ برخ بر برخواستیم بر ضد این قدرت ها میگوییم که این قدرت ها مردم را از آزادی باز میدارند نمیگذارند ما شکوفا بشویم نمیگذارند ما حرفمون را بزنیم نمیگذارند ما خواست را بگوییم خیلی خوب فرهنگ ایران میگوید که هر قدرتی در جهان آزادی را از انسان میگیره پس باید به طور کلی بر ضد قدرت برخواست نه تنها بر ضد این قدرت و اون قدرت نه فرهنگ ایران اصلا بر ضد قدرت است. این یکی از است که باید خیلی جرف و دقیق فهمید به همین علت نیز در اروپا مردمان نه تنها بر ضد حکومت و بر ضد کلیسا و بر ضد قدرت های اقتصادی یعنی سرمایه داران بلکه بر ضد اله نیز برخواستن بر ضد پدر آسمانی بر ضد یهوه برخواستن چون گوهر این الهان، ها گوهر این اله ها قدرت و علم بود همه چیز را این الهان پیشا پیش, پیش میدانن همه چیز را میدانن هر کاری را با این دانش میکنم یعنی چه اینا معلومات کمپیوتری دارن یعنی همه در م... این... این مفهوم علم نیست که خیلی آخیال میکنن مثلا در قرآن، تورات، انجیل اینا بحث علم به معنای ما نیست اینها مجموعه معلومات از اول تا آخر همه در اونجا ضبط هست و میدانن با تحقیق و تفکر و اینا کار ندارن اونجا یک حافظه یک صندوق یک جفری هست که همه اونها اونجا هست این را علمش میگویند این البته به کلی با مفهوم علم امروز دارد. حالا همه چی این اندیشه یعنی انسان حق ندارد خودش بجویه با این اندیشه وقتی که گفتن خدا هر کاری رو با چنین دانشی و با چنین قدرتی میکنن این که حق انسان حق نبرد خودش بجوید و بیاد ماید و بر پایی چنین بینشی بیافریند و جامعه را بیاراید ایرانی به سیاست نمیگفت سیاست یک واژه بسیار زشت و خار خاریست خار که باید از تمام ادبیات ایران حذف بشود برای خاطر که معنیش یعنی شکنجه یعنی آزار یعنی عذاب دادن ما چنین ای را باید شرم داشته باشیم اصلا به کار ببریم این بود که سکولاریته خواهناخواه در این مرحله بر ضد چنین خدایی بود این بود که در اروپا اتئیسم را داد این خیلی مهم است این بر ضد چنین خدایی به الهی باید هم اعتراض کرد برای رسیدن به آزادی راه دیگری نیست ولی آزادی تنها ضدیت با دستگاه های قدرت با مقتدرین نیست بلکه با قدرت هم هست و ولی آزادی حتی این هم نیست بلکه آزادی یافتن فرصت و افق و امکان برای آشکار ساختن گوهر و بن خود انسان هست این آزادی است این معنای مثبت و برآیند حقیقی آزادی است که فرهنگ ایران با آن راستی میگو درست به چنین پدیدها ایرانی میگفت راستی این است که ما برسید به کلی واژه راستی را در راستای دیگری بفهمیم این مسئله اصلا مسئله اخلاقی نیست مثلا وقتی می گفت وقتی ایرانی می میگفت که خدا راست است، این بدان معنای تنگ نبود که حرف راست میزند و پیامبرانش حقیقت را میگوید بلکه بدان معنا بود که خدا گوهر خودش را در گیتی شدن آشکار می سازد. خدا گیتی می شود. آسمان و آب و زمین و گیاه و جانور و انسان و بالاخره خودش می شود. وقتی گیتی شد خودش می شود وقتی گیتی نشده هست خدا خدا نیست این اندیشه ایرانه از این بود که از این رو بود که نام خدایان ای خدای ایران کمای چهرازاد بود. کمای چهرازاد ببینید واژه آزادی ما از کجا اومده. چهره کلمه چهره چیتره است چیتره یعنی تخم توخ کدا چیز است که در گیتی شدن گوهر او هر خود را میکستن بنابراین او راست است او آزاد. هست. راستی و آزادی این امکان خود افشانی در گیتی بود حالا خردش ببینید اینجا با پدیده های مختلف آشنا میشه بید خرد در اصل خره تو بوده خره هم به معنی خاره هنوز در کتاب لغت می که خاره هم معنای زن دارد هم معنای سنگ دارد هم به معنای حلال ما هست سنگ معنای معنای اصلی امتزاج و اتصال دو چیز به هم دیگر بود که با هم همیشه با هم باشد این معنای سنگ بود هنوز در سنگم سنگم معناش اینه سنگ این معنا رو داشت برای این خاطر است که این اصل وجود را اون وجود را سنگ بشون گفت. این از خاطره ها رفته است ولی اون حلال ماه خرد حلال ماهی است که میزاید اگر در شاهنامه دقیقه دقیقه بکنیم میبینیم انسان به درختی همانند میشود که باراش ماه یا حلال ماه است. مقصود همین خرد است. کسی که میزاید یا میروید راست است. چون اونچه در گوهر در بونش هست در پیمودن زمان، در درازای زمان میگو حس حرکت زمان فوق العاده اهمیت که خوب اینجا توجه بشود که اینجا خرد به کلی با مفهوم عقل با مفاهیم عقل هم در اسلام و در عربی و هم در راسیوی اروپا و یونان فرق دارد. این حرکت گوهر به بیرون در زمان این ناگون جایی در خود بودن و برون افشانی خود در گیتی در زمان به هم پیوستگی داشت این حرکت همه این اون رو میذاید زاید اون, اون رو می همه به هم پیوسته بود این اون را رو میروید از اون آن رویده می میشد یکی پسر در حالی که زمان گذرا که بحث سکولار تیما بود در برابر مفهوم زمان بیکرانه قرار می, می گفتن زمان گذرا و زمان بیکرانه زمان بیکرانه اسمش زربان زربان قدای زمان بود این را میگفتن زمان بیکرانه حالا زمان گذرا با زمان بیکرانه با هم داشت زمان گذرا همین زمان فانی بود که ما به سکولاریته گفته شده است زمان بیکرانه و زمان گذرا از هم بریدن و دو گوهر مقایر و جدا از هم این است که میبیند اونجا خوشیه ها همه میرود به زمان میکرانه از زمان درگیتی به کلی جدا میشود زمان گذرا زمان کرانمند است حالا این کرانمند یعنی چی؟ وقتی ما امروزه میگوییم بیکرانه یعنی بی انتها و بی آهات. ولی این معناش نبوده است برای همه خاطرم در درک که مفهوم زبان بیکرانه ما به اشتباه می‌روبه کرانه هنوز در کردی به معنای گسستن و پاره کردن است و این معنای اصلیش است زمان بیکرانه به معنای آن است که از هم این زمان از هم گسسته و از هم پاره شده نیست بلکه همیشه به هم پیوسته است زمان بیکرانه پیمودن زمانهای متصل و به هم پیوسته است دوستان یک این مفاهیم دقیقند ولی تمرکز در اینها صدها مسئله را برای ما روشن می میکند بهتر است که خیلی با دقت در اینها بیاندیشیم درخت می روید و هر روز در فرهنگ ایران شاخها دیگر بر تنه درخت سبز می‌شود. این هر روزی برابر با یک شاخه و هر شاخه یک روز تازه این روز از روز پیشین بریده نیست بلکه به آن متصل است ببینید خوب اینجا میبینیم که نمیگذرد بلکه یک شاخه اضافه می شود. ولی زمان گذرا زمان کرانمند است یعنی هر روزی از روز پیشین بریده و گسسته میشود و دور انداخته میشود خوب متوجه بشویم که ای ایرانیان به کلی تجربه دیگری از زمان داشتن و درست این تجربه است که برای سکولاریت لازم است. و درست همین تجربه است که ما را راست می‌کند. ما در زمان میرویم این پیدایشه. حالا بحث می‌کنیم این پیدایش دو مفهوم از زمان از کجا آمد؟ این البته بحث خیلی مفصلی است ولی من در اینجا کوتاه یک اشاره می‌کنم و سعی می‌کنم این روشن باشد. از تغییر ناگهانی مفهوم و تصویر بون، این مفهوم زمان اوزارا و زمان کرامان پیدا شد. یعنی چی؟ یعنی اون بون زمان هر چیزی رو در فرنگ ایران از بونش میفهمد. بون زمان از هم گسسته میشه. اون بن اون جایی که زمان ازش می روید اون تخم زمان اون تخم خودش از هم می شود بن زمان که زرون باشد زرون زر ذر، معناش نی بوده است به معنای اصلیش اگر توجه کنید ده، ده، ده، ترکا به به طلا زر میگن آل تون آل اسم سیمر یعنی خدای زایمان و تون یعنی زهدان یعنی زهدان تیمور که همون نای باشه سیمور نای به هست زر در اصل و نی نه بودن هنوز در نهاوند به نی نه نهاوندی میگن زریره یعنی ستونه حالا زر ون ون چی بوده؟ ون همون واژه بند امروزی است. وان، بند، بند. ون که بافتن و به هم رشته کردن باشد، معنای عشق دارد. یک چیزی به هم بافته، مفضل. نماد عشق. وناندن هنوز در کردی معنای نهاندن اساس و ایجاد کردن دارد. با عشق همه چیزها نهاده می شود همه چیزها ایجاد می گردند. یعنی چی؟ یعنی بون زمان زربن یعنی بون جهان عشقیست که ابداع میکند، کند که ایجاد میکند و اساس جهان را می نهد. حالا من اینها رو میگویم که دقیق بشویم که نه برای خاطر واجه شناسی بلکه دقیق در مفاهیم بشویم میدانیم که منزل بیست و قمر ببینید از کجاها ما این واژهها و این مفاهیمی رو که بریدند و دور انداختند برای مسخسازی این افکار ما چجوری میتونیم پیدا کنیم این روش هست میدانیم که منزل بیست و قمر دو است داشته است یکی بند است یکی یوق و همین ما را به اصل مطلب راهنمایی میکند می کند حالا یعنی چی؟ این بند مسایست با یوق بند که یعنی همون یوق حالا یوق را البته امروزه به چوبی که می که دو تا گاب یا دو تا عصف را به هم متصل می کند ولی این بندی این بندی است که در مفهوم تازه زمان از هم گسسته می شود این بند همان یوک هست که گردونه آفرینش را می راند این ایرانیان معتقد بودند که گردونه آفرینش دارای دو اصب یا دو گاو است که اینها و انگرامینو بودند و گردونه آفرینش با این یوق که حلقه اتصال این دو هست وقتی که اینها با هم هماهنگ بودن این دو گاو آفرینش این دو اسب آفرینش که یکی سپنتامینو و یکی انگرامینو باشد اینها وقتی با هم هماهنگ حرکت بکنند پس گردونه آفرینش به حرکت میو چرخ و گردونه آفرینندی آفرینندگی؟ انگامی به حرکت می آید که انگرامینو و سپنتامینو با هم هماهنگند این هماهنگی دو نیروی آفریننده کیهانی که اصل حرکت همون عشق و مهر میان این دو هست حالا ببینید این این خیلی نکات را برای ما روشن می کند که در اثر تبلیغات الهیات زردوشتی به کلی مغز هم ایران شناسان را هم خود ایرانیان را گیج و گم کرده است و به کلی استنبادات استنبادات, استنبادات عوضی و غلط از فرهنگ خودمون داریم این هماهنگی دو نیرو یه بنیادی که در بن هر چیزی هست نام های این یوغه یک این اصل سیوم این یوغ این همون کلمه یوغای هندیس یعنی اتصال یعنی پیوند یعنی جفت اصلا کلمه یوغ از کلمه جفت میآید این را بهش میگفتند نرسی یا نریوسنگ این اسمی بوده است که به این یوق می دادن. حالا زمان یا زروان بند نیست بنابراین بند, بند نی اینجا من بند نی رو یک بار دیگر توضیح میدهم زمان اصلا بند نیست زروند بند نی برای ما بیمعناست ولی در این فرهنگ نه تنها معنای اتصال نی دو بخش نی رو به هم داشته است بلکه بند نی بدین معنا بود که که در انجام گیاه در فراز درخت کوچه یا بنی پیدا میشود که دارای سه جز یا سه لایه است اینها میگفتند همین سه بخشی رو که ما اینجا الان صحبتش رو نکردیم این اینگرامه این و سه پنتامین و این اینها میگفتن این در پایان نه یک بندی میروید اون بند خودش این سه اصل رو دارد و از این سه اصل نه تازه میروید حتی عقیق دستان که خانه اشکوبه اشکوبه همین است برای همه خاطرم سقف‌های های را سلایه می سختن. این سلایه یا سبخش چی بودن همین رام و بهرام و سیمور بودن که اینها با هم اصل آفریننده و اصل اسخ بودن حالا چرا رام و ارتا این یک خود پیچی دیگیست ولی یک باری که متوجه بشیم همه فرهنگ ایران را درک می‌کنیم. رام و ارتا ارتافرورد ارتافرورد همون سی مرخ رام و ارتافرورد دو رویه یا دو چهره اصل مادینگی یعنی سپندامینو هستم این دو چهره مادینگی دو چهره دارد یکی رام است خدای رقص و شعر و موسیقی و بینش یکی ارتافرورد هست یه نقش دایه دارد حالا این دوتا دو چهره اصل مادینگی است. بهرام که همون انگرام اینو باشد چهره اصل نرینه کل هستیست اون نیروی که اینها را با هم هماهنگ میسازد و در این هماهنگی جنبش آفرینندگی شروع می شود نرسی یا نریوسنگ خارنده میشود. این خیلی مهم است چون که این ش... این, اه اه این اندیشه کل فلسفه و جهانبینی ایرانی رو مشخص میکنند و ما بایستی در در این تصاویر نهایت دقت رو بکنیم هنوز در کردی نیر یا نیره به معنای یوغ است. سنگ هم همینجور که گفتیم نریو سنگ سنگ هم به معنای به معنای دو اصل متهم به متصل به هم است این خیلی مهم بوده است مثلا که گفتم سنگم در برهان قاطع درست به همین معنا هست دیدم می شاید میم می زینتیس حالا به دو شاخ حیوان هم سنگ می گویان چون که ما هم دو شاخ دارد دیگر این را به همین علت سنگ میگویند چون که این دو شاخ را به هم متصل میشوند حالا کرد ها به سینه اساسا چون دارای دو پستان و دو است سنگ میگویند سنگ اوتان یعنی سینه زدن حالا البته این معنی های سنگ باقی مونده است در همه اون معنایی را که امروز ما میگیریم ندارد و مثلا در کردی یک معنای واژه قدیمی سنگ کچه می بفتن. یعنی همین اسم یعنی دختر باکره دوشیزه که این اسم سیمور بوده است حالا من اینا رو نمیشونم شما شاید دیج بشوید مقصودم این است که این این یوگ این کسپنتاومینو و انگرامینو رو را به هم پیوند میدهد و با هم هم هماهنگ کند این درست همین نریوچنگ معناش یعنی چی یعنی یوغ دو اس یعنی دو معنای خود این نریوچنگ نار معناش یعنی یوغ دو اس یعنی چیزی که دو تا اصل رو به هم می کشونه حالا این هماهنگی ببینید این فوق العاده این نرسی نرسی یا نریوچنگ مهم است که این نرسی اصل زیبایی است به عبارت دیگر هماهنگی نیروها و اندامها و بخشها و افراد در اجتماع این در اثر چی است؟ در اثر همین نرسی است. این نرسی است که اجتماع را می راید، زیبا می کند و نظمی آفریدند نظم. و این را فرهنگی ایران و یاد حکومت گری در اجتماع نباید یک حکومت باشد، بلکه باید در اثر نریوچنگ در اثر اصل هماهنگ کننده همه اعضا همه اندام ها را با هم هماهنگ کند کسرت را با هم هماهنگ کند این اصل نظم است چون که نرسی هم اصل نظم هم اصل زیبایی است از این هماهنگی است که از این هماهنگی است که کی پیدا میشه مهر و بینش و نیکی پیدا می... پیداش میآورد ببینید این فوق العاده مهم است چون که اصل یعنی مهر و بینش و نیکی از کجا پیدا می شود درست از این هماهنگی سپنتا مینو و انگرامینو در بونه هر انسانی البته نیر و نیره به معنای میان هم هست چون که اساسا یوق را در میان چیز هست در میان دو نیرو هست پس نریوس دو نیرو و دو اصل را در هماهنگ ساختن آنها در حرکت نه در سکون در حرکت ببینین محفوم هارمونی در اروپا هر استبللیرت هارم هارمونی که لایپلییس آورد درست این معنی را نمیدهد. این در حرکت در همربشی بشی در همگامی در همتازی به هم پیوند میدهد. حالا در این پیوند است که با هم آفریننده می شوند این دوتا از در هماهنگی، در حرکت با هم آفریننده میشود. این رو در ایران همبقی میگفتن همبغ که شده از واژه امباز ما این به کلی معنای شریک عربی رو نمیدهد. دهد یعنی همبقی یعنی دوتا خدا با هم دیگر هم روشی بکنن هم کاری بکنن هم اندیشی بکنن تا بتوانند بیافرینند و اساساً اجتماع در اثر این همبقی یعنی همه با هم بیافرینند همه با هم حرکت کنن همه با هم همکاری کنند همه با هم بیندیشن همه با هم گفتگو بکنن این رو میگفتن همپرسی اون وقت با این میتوانن می میتوانن می ایجاد حکومت بکنن یعنی خودشان سیمور باشن خودشان هم تمام هم، این افراد با هم دیگر اون موقع مثل داستان اطار سیمرغ می شود قدشان شاه می شود این, این را این همبغی را با همتاختن را با همتاختن نیروها این در اثر یو با همتاختن اطار این را می گفتند همتازی همتازی درست این واژه اندازه ما اندازه ما معنایی ندارد که این متر است نه واحد،, واحد چیزی نیست اندازه گرفتن این معناه رو نداره اندازه گرفتن اندازه یعنی با هم تاختن یعنی در هارمونی، در هماهنگی با هم تاختن حالا خوب این نکات را که من گفتم اگر فراموش نکرده باشیم میبینیم که فرهنگ ایران برعکس الهیات زردوشتی اصل خیر و اصل شر نمیشنا الهیات زردشتی اهورا دا یا سپنتامینی را اصل خیر و نیکی و خوبی و بهی میداند و انگرامینو را اصل شر و زدار و بدی و دروغ میداند و هر کدام از اونها به تنهایی میتوانند به خودی خود بیافرند فقط یکی بدنی نیکی آفریند و دیگری فقط بدی میآفریند در حالی که فرهنگ ایران خیر و شر، خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، آفرینندگی و سترونی را پرواند هماهنگی و ناهماهنگی دو نیرو یا چهار نیرو در بن انسان میدانست ببینید اصلا تفاوت دارد این اونجا اصل خیر و اصل شر آمدند راهیات زردوشتی سا در که فرهنگ ایران من چیزی نمیگو فرهنگ ایران اصلا اصل خیر و اصل شر رو نمیشنا بلکه اصلا انگرامه اینو هنچه معنایی نداشت که احریمند بعدش در زردوشتیگری پیدا کرد بلکه این هماهنگی یه نیروها در بن در بونه انسان بودن که وقتی هماهنگ هنگ باشن وقتی همبق باشن وقتی اندازه باشن اون موقع ایجاد چی میکنن؟ ایجاد مهر میکنن ایجاد بینش میکنن ایجاد جوانمردی میکنن و اگر ناهمه ساخته بشنن ایجاد کین و ستیز و ایجاد نادانی و یا دوجدانشی ایجاد ناجوانمردی میکنن بهترینه این این ردپا در داستان سهراب و رستم آمده است و اساسا داستان سهراب و رستم روی این پایه قرار دارد یعنی چی؟ یعنی رستم در وقتی که با سهراب کشتی میگیرد روز اول و شکست میخورد اون وقت نزد خدا میرود به خدا میگوید که خدایا من جوان که بودم دو تا پایم من انقدر نیرو داشتم که این پاهایم در خاک فرو میرم و و من نمیتوانستم راه بروم ببینید اصل حرکت با بی اندازه شدم. و اون بود که آمدم از تو خواستم که نیروی من را بکاهی تا من به اندازه بشوم. و تو این نیروی من را کاستی و من میتوانستم راه بروم. حالا من از تو خواهش میکنم که در یک بره کوچک از سر همون نیرو را به من بده یعنی چی؟ یعنی من را بی اندازه بکن. و در اینجاست که رستم سهراب را به زمین میزند و ناجوان مردانه میکشد هم بینش ندارد که این پسرش هست هم مهر را به کلی از دست میدهد هم جوان مردی رو یعنی چی یعنی بی اندازگی اصل تمام بدی هاست وقتی اندازه نبود وقتی هماهنگی به هم خورد این نیروها وقتی که در بی اندازه شدن این بی اندازه شدن به کلی سبب ناهماهگی می شود این است که او توجه کنید که درست همین در میگردن به قوای موجود در اجتماع قوای در موجود در اجتماع اینه که بعدش منتسکی و سه مغننه گفت که البته بیشتر هستند سه قوه مختلف مغننه و مجریه و قضایه اینها را اینها اصاسا بحث تفکر ایرانی این است که هیچ کسی حق ندارد بی اندازه باشد، بلکه نیروها باید هماهنگ باشند به محض اینی که یکی بی اندازه شد به کلی اجتماع با هم میخورد خوب این تفکر بسیار ژرف و عالی رو ما باید درک بکنیم انسان با دو پا هنگامی حرکت میکنن که آنها تازه یعنی اندازه هستن هم روش و همگام و همکار هستن رستم در یک لحظه بی اندازه شدن نیروی بیش از حد یافتن از حد گذشتن هم مهر را شناستن هم بینش را از دست میدهد و هم نو... ناجوان مرد می شود و نیکی را پراموش می تونست. این چیز؟ این این نکته فوق العاده مهم است. این اندیشه قوبی و بدی پیایند هماهنگی و همروشی یا ناهماهنگی و ناهمروشی است بر ضد اندیشه ای الهیات زردشتی که یک اصل خیر است و یک اصل شر هست ینی که اهورامز و انگرامینو اینها ای تفکر ایرانی این را نداشته است این فرهنگ ایران نبوده است این اهریما مخلوق الهیات زردشتی است به این معنا یک اهریمن انگرامینو در تفکر در فرهنگ ایران معنای فوقالعاده العاده مثبتی داشته که ما بایستی یک موقع با دقت به اون بپردازیم حالا اینی که یک اصل در ظلایات سردوشتی میاد که یک اصل خیر است و یک اصل شر پس بنابراین چی مسئله در اینجا چه می شود ستیز همیشگی میان اصل خیر با اصل شره و این هیچگاه تمام نمی شود چون انگرامینو سپنتامینو یا انگرامینو اورامزده دونی روی برابر بودن و هر دو آفریننده بودن فقط در بقی، یعنی در یوق می توانستن با هم یک چیز را بیافرینند در در پرانگیران ولی اکنون که این دو اصل از هم گسسته شدن اونگاه ستیز و جنگ همیشه گی می شود. و امکان پیروزی و شیرگی یکی بر دیگری نیست. اصلا تا زمان گذراه یعنی تا زمان کرامند یعنی در زمان فانی همیشه اینها با هم میجنگند در... نه تنها در خارج بلکه در درون هر انسان پس تنها راهی که میماند آن است که زمان و هم پیوسته این برای الهیات زرد وقتی که این دو عصر را هم پاره کردن یک رو امکان دیگر باقی من. و اون این بود که بیان زمان به هم پیوسته را یعنی زمان بیکرانه زمانی که از هم پاره نمی‌شد را کرانه مان تا حد به چی بشود تا حد اقل این ستیز و جنگ فقط در چند هزار سال باشد و عملا آمدن این در این داستان های می میبینیم و عملا اهورامزدا از اهریمن پیمانی با اهریمن پیمانی میبندد و در اثر آن که اهریمن پس دانش است یعنی لود مت... یعنی بعد از اینی که تجربه کار به دانش می رسد و جلوتر نمی‌داند مثل اهورامزدا که پیش دان هست این است که اهورامزدا او را می‌فریبد یعنی دروغ می‌گوید خوب متوجه باشید ببینید به کجاها کشاندن داستان چون میگوید بیا زمان ستیز و پیکار را مانند پرلوانان معین و محدود سازیم حالا و بر این قرارداد با هم پیوان ببندیم ولی اهورامزدان میداند که گوهر اهریمن زدار کامگی و ستیزندگی و پرخاشگری یعنی چی؟ یعنی اصلا بدون اینها نمیتواند زندگی بکنند اگر اله یک لحظه نجنگد و یک لحظه نکنشد بنابراین نابود می شود حالا با هم وقتی پس وقتی این زمان پایان یابد یعنی این چند هزار سال که با هم قرار داد گذاشتن پایان یابد این پیشنهادی است که اهورامزدا به اهریمن میکند آنگاه اهریمن اصل وجودی خود را از دست می دهد. اصل جنگ و ستید و پرخاشگری از آن پس حق ندارد بجنگد و به سفید و پرخاش کند بدین سان خود به خود محو و نابود می شود. اصلا مثل داستان مارکس هست در موقعی که حکومت به کلی مح می شود. یک دفعه از صحنه تاریخ نابود به کلی مثل می میزند. این مسئله این در اینجا همین جور است. البته این ایده ها همه به هم متصل است. مسئله در واقع کیل شدن اهورامزدا بر اهریمن نیست. در واقع اهرام از نمیتواند در این زمان بریده یعنی در زمان گذرا یعنی در زمان پاری در این زمان نمیتواند چی؟ نمیتواند بر احریمن چیره گردن و او را شکست بدهد. فقط وقتی زمان بریده شد و به پایان رسید اونگاه احریمن به کلی خودش از بین میرود. و حالا خوشمزه این است که اهریمن حالا ببینید این بخش های خوشمزه هم دارد اهریمن در این داستان اخلاق پهلوانی دارد و بر سر پیمانش تا لحظه آخر می و در اثر این درست پیمانی از بین می رود. نه که که اهورامزده شکستش بدهد خوشمزه است که اهریمنی که اصل فریب و چنگ بارون زدن به شمار می هم از اهورامزده فریب میخورد. و اهورا مزدا به او چنگ وارونه میزنه و هم اهریمن است که تا پای نیستی و امهای خود بر سر پیمانش میماند ببینید ما چه اهریمنی داشتیم خدا جدا ه اهریمن خدای اخلاق است شما ببینید هیچ کدوم از این آخوندها بر سر پیمانشان هیچوخت نمیمانند همیشه خدعه میکنن. خب این هریمن ما جدا خدای اخلاق است چون حاضر است برای ماندن بر سر پیمان حسی خود را برباد داده این بریدن انگرام ببینید اینجا در اثر چی ایجاد شد در اثر اینکه الهیات زردوشید این انگرام را از سپنتا از هم برید این بریدن انگرام از سپنتا که به معنای نابود ساختن اصل عشق و هماهنگی خود جوش از آن دو هست ایجاب مسئله بریدن زمان را میکنه بریدن بریدگی سپنتامینو از انگرامینو معنای جرف دارد در واقع میان آنها به اصطلاح زردشتی توهیگی یعنی خلاع ایجاد میشود. حالا این خلاع چه بیشگی دارد؟ این است که امکان هر گونه آمیزش و سنتست نیست این خلا حالا دو اصلی که با هم یوق و باب و هم آفرین می حالا دیگر بوی از عشق نمیبرم و ناتوان از آمیزش با هم دیگر هستند و خیشکاریشون فقط ستیز، ستیزه با هم دیگر است باید در نظر داشت که این دو اصل در هر جانی و در هر انسانی هستند. این دو اصد در بونه هر انسانی هستند این فرهنگ ایران بود جزوه. نیروهای های انسان بودند پس در جرفا و درون همه جانها و همه انسانها در اصل جنگ و ستیز هست ببینید اشک رفت اصل اشک رو با این ترتیب نامود کردم برای بریدن زمان گوهر انسان سسی زندگی و پرخاشگری و ناآشکی خواهی و کین می شود. در حالی که بیشتر در فرهنگ ایران عشق و هماهنگی و همکاری بود حالا این تصویر دو اصل همزاد به این میگفتن همزاد به همین جفت میگفتند به این جفت چه انگرامینو که فالوی حافظ گل چهره و اورنگ هست استوار بر چی بود تصویر این دو اصل همزاد استوار بر اصل اندازه و هماهنگی بود که این را مفهوم مهر ایرانی باشد یعنی کسرت را میپذیرد کسرت در هماهنگی میتواند به وحدت برسد وحدت را با اون مفهوم اسلام و عدیان ابراهیمی نمیپذیرد تصویر دو اصل از همپاره در بن انسان استوار بر جنگ و ستیز فطری انسانی انسان از این بعد اصلا بیتی با جنگ و سهچیز آغاز می شود. نقطه شروعش در الهیات زردشتی میشد انسان در میان اره شده است الهیات زردشتی در رابطه با اهرامززه و اهریمن اصطلاح توهیگی یعنی خلع مطلق را بهکار میبر همچنین واژه سفتن را که سوراخ کردن باشد کار میبرد ولی دم از اینها رو به طور بدیهی به کار می‌برد ولی دم از بریدن و کرانیدن و اره کردن و از هم دریدن ره و اهورامزدا و اهریمن در بن زمان نمی‌زد. چون چرا این, این کار رو نمی‌کرد؟ چون این اصطلاحات در ضد مقدس بودن جان هستند. ببینید این بن جان بود. این بن زمان. پس بنابراین الهیات زردشتی دوشتی می توانست این حرف را بزنه چون که فرهنگ ایران مانع این مسئله می شود. این مقدس جان بودن جان را باید رعایت کنه و بریدن بون زمان بریدن اصلا کلمه بریدن به معنای کشتن و دریدن است یعنی ایجاد درد میکنن یعنی میکشد. پس بنابراین الهیات زردشتی این رو به احریمن نسبت می داد به اصل دیگر این رو حالا خودش بیاید این چجوری این احورامزا از احری من وسطش توحیدی است باید یک کسی ببورد همینجا زخم و درد شروع می شود می بینید از مسئله خیلی بالاتر از این است که الهیات زردوشتی گرفته است حالا اون این است که این توهیدی را امر بدیهی می گیرد. در جهان هستی در بن خلا هست یعنی بین این دو رو یک هست یک توییگ. ولی این و این برای فرهنگ ایران پرنفذی رفتنی نبود چرا؟ چون برزد اندیشه وحدت جهان و به هم پیبستگی جهان بود یه جهان در فرهنگ ایران همه به هم پیبستن برای این خاطر یک جهان وجود داشت دو جهان وجود نداشت بریدن به منای کشتن است چنان که به روزهایی که در آنها هنوز گوشت میخورند. و حیوان نمیکشن نابر میگوین دیده میشود که این بریدن سپنتامینو از انگرامینوش که اصل درد و بیماری و تباهی نه آن که اهریمن به خودی خودش اصل شر باشد ببینید این بعدش به کل فرهنگ ایران اینجا نابود میشود مسئله خیلی عمیقتر است ما فرهنگ خودمون رو با این الهیات از دست دادیم رد پای این اندیشه در بسیاری از جاها باقی مونده شنان که در الهیات زرتشتی خود مشی و مشیانه نخستین جفت انسانی هستند این در اونجا در الهیات زرتشتی نخستین جفت انسانی مشی و مشیانه هستن نه جمع و جما که در فرهنگ زن خدایی بودن در بوندهش چی میآید در بخش نهم میاد که ایشان یعنی مشی و مشیانه به زمین گودالی بکنم، آهن را به دان بگداختند به سنگ آهن را بزدن و از آن تیغی ساختن درخت را به دان اون پدشکو یعنی اون به چوبین را آراستند از آن ناسپاسی که کردند یعنی اینی که با آهن تیغ درست کردند و درخت را بریدند از آن ناسپاسی که کردند دیوان به دان ستنبه شدند ایشان یعنی مشی و مشانه خود به خود رشک بعد فراز ببردند به سوی یکدیگر فراز رفتند هم را زدند دریدند و موی رودن درست با بریدن درخت درخت فراموش درخ، نشود چون که انسان و حیوان و حتی خدا در آن روزگار جان گیاهی شمرده میشدن حالا به محضی که به محضی که گزند به مقدس بودن جان میزنن یعنی همین درخ و جان را از میان میبرند فوری به همدیگر رشک میبرند و با هم گلاویز میشوند و همدیگر را میزنند و همدیگر را میدرند و موی سر همدیگر را میکشند و میکنند به عبارت دیگر با ب... با برش و دریدگی و توهیگی و پارگی میان بود یعنی میان سپنتامینو و انگرامینو همه جانها و انسانها ستیزگر و درنده و تجاوزگر و پرخاشگر و رشکمند می شوند خوب دیده می شود که در فرهنگ ایران اهریمن اصل شر نبوده است بلکه این بریدگی و پارگی بون از هم دیگر یعنی چی؟ یعنی نفی و تبعید عشق و مهر و هماهنگی و اندازه از فترت انسان از بون انسان سبب پیدایش ستیزه و پیکار و رشک و آز و کین و اناد و خشم گردن خوب دقت بفرمایید این فوق العاده مهم است این اصلا ببینید این عیده احریمن به کلی فرهنگ ایران را از بین برده است چونکه اصل مسئله اجتماع و حکومت و اخلاق بر پایه اندازه می است بر پایه هم تاقتن با هم تاختن با هم راه رفتن با هم حرکت کردن و این هماهنگی بوده است که اصل نیکی یا اصل بدی بوده است حالا با بریده شدن دیگر امتداد و پیوستگی و مهر نیست وقتی بریده شد دو چیز دیگر اینها نیست با بریده شدن دو بخش هستی با گوهر متفاوت ایجاد میگردن که قابل تبدیل به هم و قابل ترکیب با همدیگر دیگر نیستن یک بخش تاریکیست و تباهیست و بخش دیگر روشنیست و راستیست و نیکی خوب ببینید از هم به کلی اینها چه بعض عجیبی فیدام شده در حالی که راستی در فرهنگ ایران این بود که بن گیتی و زمان یعنی که عشقوردی این دوتا با هم باشد می روید. یعنی امتداد می یافت و تحول می یافت و زمان می و جان می شد و دیتی می شد در واقع راستی امتداد یافتن و فراخ شدن بونه هستی یا عشق یا خدا یعنی این یوق میان دو از در همه چیزها بود در بوندهش دیده می شود که وقتی خدا خدا می شود که جهان را بیافریند در جهان شدن است که خدا می شود و پیچ از آن خدا نیست مسئله, پی... مسئله پیدایش در خدا در گیتی نه مسئله خلق گیتی به خدا این بز... بون زمان و هستی در خود هماهنگی و جشن و شادی و عشق سپنتا و انگرامینو ببینید این بون زمان این بون زمان چیست؟ این سپنتا و انگرامینو سی مرگ یا سیمرغ و بهرام یا گرچهرو و اورن این عشق است این جشن است این شادی است این شادی است که میروید در زمان گسترش پیدا میکند در بن همه آفرین, ها، آفرین های در خود پخش شدنهایش این جشن و سعادت و عشق در درازای زمان هست جشن و سعادت و عشق و نیکی فقط هنگامی هست خدا در انسان، خدا در گیتی زاده و رویده می شود. خدا در انسان پیدایش مییابد. جشن و سعادت و عشق هنگامی هست که اشع یعنی خدای شیرازی از انسان تخم جذب میگردد. انسان اساسا تخم گونه است دیگر. بر مردم یعنی چی؟ مرد تخمه یعنی تخمه. انسان از جذب این شیرابه خدا قرار می روید و به بینش و اندیشه متعالی میرسد و پرواز میکند و هم پرس خدایان در انجمن خدایان می شود. از اینجا می توان به خوبی دید که فرهنگ ایران جشن و سعادت و عشق و بینش و هماهنگی را در درون خود انسان موجود میداند ببینید این سکولاریته است فقط مسئله جستجو پشیوهش آن است تا آن را برویاند مسئله ایمان به یک پیامبر و واسطه نیست که از او کسب بینش برای رسیدن به سعادت و نیکی بکند جستجو و پژوهش جای ایمان و اطاعت و میثاق را در ادیان نوری میگیرد با بریدن و دریدن و اره کردن بن زمان دورویگی و ریا و به قول شاهنامه چنگ باژگونه زدن و خود و مکر آغاز میشود انسان انسان از هم اره شده دروگوش ستمکار است خونخوار است منافق است مدبر است اینو با نصیحت نمیشه درستش کرد اون که از میان شکافته و عره شده است دیگر با وعض و نصیحت و ارشاد و تهدید راستگوه و راست نمیشه با تهدید به دوزخ راست نمیشه با کیفر با عذاب درست درست شود و گوهر خود را نشان نمیدهد درون و زمیر او از برون و آگاه بود او از هم بریدن شاهنامه درست با همین پدیده شروع می شود کیومرز که گیامرثن کیومرث در اصل گیامرثن و در حقیقت اگر دقیق بشوید همون بون زمان و جهان است گیامرثن یعنی گیاه بردم که در شاهنامه تبدیل به یک شخص شده است. حالا این گیام کیومرث اصل مهره. و نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن دارد ولی اهریمن در ظاهر مهر میورزد و در باطن کین است و در اندیشه زدار کامگی در ظاهر به کیومرت مهر میورزد و در باطن در اندیشه بریدن یعنی کشتن او این چنگ وارونه زدن است و در نبرد با سیامک با پسر کیومرت درست چنگ وارونه می‌زند. یعنی خود و مکر میکند کیوارس در ظاهر همان گونه است که در باطن هست این امتداد و گسترش بوهره به زندگی است ر... یعنی یعنی راست است اکنون برمیگردیم به همون داستان مشی و مشیانه که به محضی که با تیغ آهن درخت را می‌برند رشک و ستیز و جنگ میانشان آغاز میشود این اندیشه از کجا است؟ این اندیشه بر برمیگردد به همون بریدن یوق که جو دروفتر گفتیم چون نام دیگر این یوق این اتصال سپنتامینو و انگرامینو که اصل آفرینندگی بند یا ون خوانده میشد که جلوتر هم گفتیم البته به درخت به طور کلی و به درختی که سیمرغ روی آن می نشیند ون می گوین. یعنی یوق ون یعنی یو در شاهنامه نیز لانه سیمرغ فراز سه تا درخت است که همین و بند یا اشک و همه هنگیست. پس بریدن یا اره کردن درخت یعنی ون از زرون زمان را زمان بیکرنه زرون است. اما همون بریدن ریوگ یا ون هست که این اشکارات ایجاد می شود این بریدن تشیدن هم می که همون واژه تیچه از این اومده است. تیش تیش یعنی بریدن در پهلوی به بریدن تشیدنم هم میگن خانه بیست و دویوم که جلوتر گفتیم که ماه در آن منزل می کند نیز بند یا یوغ نامیده میشود شود و هنین یک استاد ایرانشناس شناس اون را نصر تایر میداند که معمولا به صورت اقاب کشیده میشود که در واقع همون شاهین یا سیمرغ گسترده پرست باید در نظر داشت که حرکت ما واحد زمان و بن زمان بوده و ماه نزد آنها نامهای گوناگون داشت از جمله یکی لوخنا بوده است لوخ یعنی نه نام یعنی نه یعنی نه یعنی نه یعنی نای یعنی بزرگ پس ببینید ماه یعنی نای بزرگ پس یعنی درخت ن... نزد آنها ن... بند... این بندهای این نای خانه‌های ماه همون روزها بودند ده همین علت شاهنامه هر ماهی را یک درخت می داند. این درخت همون ضربند درخت نیاز که همهش بندد در اثر این این همانی حالا در اثر این همانی حلال مخدره یعنی با نیبون کرانیدن یا تشیدن یا برن زمان را در دو شکل بیان می چونکه چون که هم حلال ما هم در دو دوتا با هم این همانی دارد این دو شرط یکی با... میگفتن بریدن بندهای نسب که زمان از هم پاره می شود که این همون داستان که مشی و مشیانه است که در رو وقتی بریدن به هم میپرن دیگر بریدن حلال ماه است ببینید من اینا با اینها می تمام فرهنگ ایران رو بفهمیم. این بریدن حلال ماه است این همون چیزی است که در اسلام شقل غمر خانده شده است مانک ببینید مانک هم نام ماه هم نام گاو است. چرا به ماه گاو میگفتن برخواست اینکه گاو معنای امروزه ما رو نداشتند بلکه به مجموعی جانها گوش او یعنی گاو میگفتند این بود که بوریدن ماه یعنی شقل غمر همون معنای ایجاد خلق یا حتف عشق و مهر در بونه هر جانی بریدن یعنی و کشتن واجه تشیدن که گفتیم به همون تیب. تشیدن یعنی تراشیدن تشیدن را در پهلوی برای بریدن به کار میبرد و افزوده بر بریدن این واجه تشیدن معنای آفریدن را هم دارد چی از به سنگ تراشت تاشان تا میگفتن پس چی؟ این است که میتراس که همون زهاک شاخنامه است در بریدن می است این خوب دقیق بشید در جلوتر رویدن، افریدن، رویدن آفریدن رویدن بود دایدن دا بود حالا در بریدن میآفریند نزدیکی ببینید واجه خلق و خرق در عربی خیلی نزدیک همان چون ره به لام تبدیل می شود خرق به معنای پاره کردن و دریدن است و خلق به معنای ایجاد کردن و ابداع کردن است. الله در خلق کردن خلق می درست همون داستان میتراس و همون داستان زهاک است. قشمزان است که یکی از معنای خرق دروغ گفتن است. حالا میتراس سوار در این چیزها نقوش برجسته سوار گاوی است که این همانی با حلال ماه دارد. این گاو را به شکل حلال ماه میکشد. به عبارت دیگر ماه و گاو یعنی هر دو تا با هم یکی هستند دیگر در برگیرنده همه جانها و اصل زاینده همه جانها بر اساس عشق هستند حالا میترات میاد چیکار میکنه رگ گردن گاو را میزنه و از آن فاصله سه برگ میروید این بیان همان خلق در بریدن هست از بریدن میروید از بریدن خلق میشود آفریده میشود البته رگ چیست رگ رو از بندهش همون ارتای همون اردی بهشت است که همون سیمرگ باشد ولی میتراس در هینی که ببینید نقطه از اینجا شروع می شود اینجا نقطه جالبه میتراس در هینی که به قول خودش در خرق کردن خرق میکند در تشیدن میتشد یعنی پیکر تراشی میکند تاشان یعنی تراشکار یعنی تراشکار می میشود ولی در زمیرش از آن باخبر است که این گذن زدن به کل جان هاست جان مقدس را دارد میاد دارد از این رو سرش را بر میگرداند تا همون عملی را که عمل خلاقه میداند خودش هم نبیند از دیدن عمل خودش شر می کند این ناراستی یا دروب است ببینید این میترست این زحاد این خدایی بوده است که بعدش تبدیل شده است به یهوه و پدر آسمانی و الله حالا این این ناراست یا دروغ است که سپس بنیاد همه ادیان نوری می شود زحاک هم پس از آنکه که ببینید از این درست همون داستان زه زحا. زحاک هم پس از آنکه که احریمن بدو کام بردن از بریدن و کشتن را آمو یاد داد که چجور می شود کام گرفت از بریدن و کشتن. به او میگوید که تو صداوار رسیدن به قدرت برجهانی ولی برای این کار باید پدرت را که مرداس نام دارد و فراموش را باید همون سیمرغ باید بکشی در آرزوی قدرت قدرت قدرتورزی برجهان را دارد ولی نمیخواهد دست از مه هم بکشد ببینید اینجا همون ده ده همین از رحمان و رحیم و هم اون غضب و خشم است هم میکشد هم مهربان دارد. این اینها در تمام این ادیان این دوتا با هم است حالا تو عین است که ولی زهاک کشتن آن کشتن مادرش و پدرش رو نمیپسندد فقط خودش نمیخواهد دستش به خون آلوده شود و اهریمن اجرای این کار را به عهده میگیرد درست سرش را از دیدن یعنی سرش را از دیدن کشدار برمیگرداند اما کشدار را برای رسیدن به قدرت ضروری می‌داند این همان دروغ است که در فرهنگ ایران در دروغ در فرهنگ ایران اساسا معنای آدوردن جان دارد نه که یک چیز گفتنی نیست در ادیان نوری همین اندیشه دنبال می شود چون این بریدن اصل آفریدن و خلق کردن و تشیدن که تراشیدن باشد چه مرده می شود اون, اون تیغ میتراس چیزی جز تیغ نور یا روشنی نیست حالا اینجا بر برمیگردیم اون تیغی را که میتراس با اون رگ را ری یعنی کل جانها را میبری یعنی می میکرد این تیغ نور یا روشنی است او با تیغ و خنجر نور میبرد و میتراشد خوشمزه این است که موبدان زردشتی می نویسند که اهورامزدا مزده گوش یعنی مجموعه جانها را تشید یعنی تراشید درست این اصطلاح را از میترایه ها به ارث می برن. این بریدن و کرانیدن زمان بریدن و عره کردن جمشید یا بن انسان از میانه درست این زهاک است حالا ببینید چی؟ درست این زهاک است که بن انسان را که جمشید باشد از میان به دونیمه اره می چون زه کشاورد ناگه به چنگ یک ها یک نبادش دمان درنگ به اره مرو را به دو نیم کرد جهان را از او پاک و بیبیم کرد کر. البته جهان را از او پاک و بیبیم نکرد چون جمشید می گفت که این خرد و خواست من رو از گوهر خدایی من است این سپنتاو و, و انگرامینو در عشقشون در درون من است که به این خرد رسیدم و من با خرد گوهری هم می توانم سعادت برای انسان ها بیافرینم از این به بعد انسان راست انسانی که چنین گوهری و خردی و خاصی داشت که می توانست گیتی را بیاراید و بهش کند از بین رفت به انسانی با به وجود آمد که بنش از هم شکافته بود گوهرش دروغ و دروی و ستیکزندگی و رشک و خدعه و مک بود این کاربرد شر این کاربرد شر برای رسیدن به غایت خیر را در اسلام حکمت مینامند این علحان نوری به خود حق میدادند که شر را ابزار رسیدن به خیری که آنها میدونستان چیست بکنند و این فرهنگ ایران بر ضد این حکمت بود و شاهنامه با این اسطوره می شود و اصل راستی در فرهنگ ایران بر ضد حکمت بر ضد خود بر ضد مکر و به خیانت خیر است دوستان من از شما خود میکنم تا در تا سخنرانی بعد خوش و قرم